بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و عبدالعالمین و الله اللہ و عبدالسلیم الله و المعصومین اللهم برحمتك يا یا رحمت رحمی هر که بود آیا به قطع حاصل از مقدمات اهلی میشه ا<html>جتمااس شد یا نه این بحث اینجا بود بس نظر مرحوم شیخ در مطالبی که اخبارها گفته بودند منجعه‌مینی شد که ما یه مقداری که ما خود مرحوم محدث استرآبادی رو بررسی بکنیم ببینیم ایشان ملخص مطلبی خمش اولا یه مقداری که ایشان مقدمه از کلمات اصولی این بودن از وقتی که مدارک احکام رو چهارتا کردن ایشان به عنوان عقل معلوم شد که براعت و استصحاب یکی از عقاس عقلیه البته از عبارتی که از محققشون مرمی کرده بودن من از تو بحث عقل یه مقدار توسعه داره و حالا من انشاءالله تعالی بعد چون بناستیم ما توییم غیر از اون مسئله حجیت قبل اصولا این عرض عرض و و اصول این مبه که ما را در عرض در کلمات اصولیم اصولی چیه؟ که عرض جز اکرد لعرض اگر افتر اصلا عرض یعنی چیه؟ خب یه مزای عبارت رو خود مرمون مولا محمد امین استرابادیم در حصلی که قرار دازه بود به تفسیل اصول یکیش قرارت بود در کلمات سابقین برای ایشان هم براعت بود این ذهنیتی که برای مرموم مولا محمد عمید بود مسئله براعت البته استسخاب هم بود براعت هم بود بحث ملازمات هم بود بحث دلالت مفهوم و مفهوم موافقت و مفهوم مخاطر که من این شده رحض می کنم که شاید مورا در یک اصطلاح خاصی باشه که به ذهن این آیان آمده و هر حال. یکی از اون مباحث اصلیشون براعت بود و استثاب ما اگر باکن تمام اون مباحثی رو که آنون گفتن متعرض بشین چون میکیشی یکی دوستش با تفصیل بیشتری متعرض بشین بقیه رو که در محل خودشون ممکن بی این زودیات براعت کنده نشی و استثاب و اندازه یک توضیحی که آیا واقعا اندازه احکام عقل و آیا واقعا اینطور که ایشون حمله کرده مثلا التظام به استصحاب مثلا هجم دین تخصیر دین و مثلا تنگیه هایی که ایشون فرمودن و اصل مسئله چه بوده اصل هم حضور با همینطور که ایشون از بزرگان نقل کردن براءت استصحاب من امروز مثال های روشنی رو خدمتون رو ارز کردم. این بوده از اول یعنی از همون اهد صحابه این مطلب مطرح شده تازگی هم نه در راست, راست همون مثال های بارز مثل فرسون به که مسئله زن بعد از پاک شدن از حیز و قبل از اقتصاب ادهی از صحابه استصاب جادی میکردن گفتن که حالا حرام بوده حالا حرام و ادهی هم براعت چون گفتن این حکم در کتاب و سنت نیامده کسی از به من نقل نکرده پس در واقع این حلال این حرام نیست نهایت چون در آیه مورد که فیلات و فحرمه داره مراد از فتحور و همون شستن ظاهری نه قرصی قصد میگرفتن نه اقتصال خودش رو بشوره مثلا نه این کار برای قرصی بکنه اقتصال رو لازم نمیدونستن همون شستن کافیه مجرد طاق شدن کافی نیست شستنی همانجا این خلاصی نظر خب طبیعتاً بعدها این شکل و شمایل بیشتری پیدا کرد مرتب شد منظم شد حساب کتابی پیدا کرد و منجر شد به تدوین علم اصول حصول که کرد انبوتی این مسئله براقت به استثاب و قیاس اینها چیزایی بودن که برمی گرشت به شبهات و کلی یعنی به احکام شریعت و غیر از موضوعات خارجی به احکام شریعت مثله بود و به اونجا برمیکش در این مجموعه فرصوی مثلا 14 تا حالا که ما در خدمتون هستیم تقریب یک نواخ نبوده حالا منظم برایت تقریب برایت حالا چه برایت جاره بشه چه افتیار جاره اصل مطلب این بوده که در این مسئله نفسی پیگاه نشده نه به عنوانه نه به خصوصه نه به عمومه مثلا نه که نبید حرامه و گفتند نشده کل مسکل حرام این بستر اینه نه به عنوان عام ما دلیلی داریم نه به عنوان خاص خصوص این عنوان اون وقت در این باره آیا براعت باشه یا افتیات باشه یا اگر حالت سابقه بود استثاب باشه یا حالت سابقه نبود براعت باشه یا افتیات طبعا بین علماء اسلام اختلاف شده اون نقطه رو که بخواهم امروز توزیر بدمشون ما بیشترین هدفمون در بحث ها اون روش شناسی و منهج بحثه مثلا روشن بشه بحث در چیه و وقتی این منهج بحث روشن شد خود شما هم نتیجه گیریتون راحت تر میشه مثلا این از این زاویه بررسی کرده خب اون زاویه رو خود شما مورد نظر قرار میدید این آقای دیگر از این زاویه بررسی کرده اون زاویه دیگه. در مورد براعت یا در محل خودش استجرس احتیاط مجموعه اقوال و بینش ها و نظرها این شویه یک که بیشتر بین آمه مطرح بود و طرف دارانی هم دونه این که اگر در کتاب و در سنت نبود در واقع نیست و براعت اگر از اباه هستال خود و بحث شان دراحت شامل مسئله احکام ور نیست، شریعتی و جزئیات اینا میشه دیگه. اباه خاص بونه دراحت شامل احکام هم عطا برابر. قولی شامل احکام لزامی هم میشه. و قول لا هم شامل که قول اباظ بیان داریم، قول عتاب بلا بیان هم داریم. نه برای عقاب تا پیدا. عتاب بلا بیان هم داریم میشه نفی شراحت یا نفی استفهام. حالا این که ما خواهران مسئلهی که بگیم اصلا نیست چون در کتاب نیومده در سنب نه ابن حضر کرد در بین اهل سنت وقتی صحبت از حسابت برای میشه قالبا همین مراده که ما در کتاب و سنت نگاه کردیم و نیست و نمیتونیم به خیالات و اوهام خودمون دلیل آمد قل یسالونه که عن المحیص قل حوه خا اثر زلو مسائل اما بعد از محیز دیگه خب صد مهیز نمی‌کنیمش این نکته رو برگردیم به حالت محیز اینه که بگیم حکمی نداره اصلا یعنی نه اینکه ظاهرا نیست واقعا حکمی نیست حکمی در این جهل جعل نشده و این رو اسمش رو اساطول براه برسون ما یه توضیحی رو چند بار سال‌ها در خدمت عالم کنم این اصطلاح منه نمیدونم که هم ام تعالی ترغی به این پیدا کرده باشه یا گفته باشه یا تبنی کرده باشه ما همین گفتیم جاهایی که مراد واقع اونجا را قاعده تعبیر می‌کنیم جایی که مراد ظاهره اصل تعبیر می‌کنه پس خود اساس ال اباحه اساس الاباه یا اساس ال دو کار داره یه دفعه است که ادعا میشه هر چیزی رو شریعت مقدس حلال کرده در واقع حلاله و به عنوانه مثلا خوردن خاک کره ما مثلا به عنوانه حلاله حالا کره زمین نه اگه حالا خاک نباشه اونسا دیگه شوش. این به عنوانه حلاله کل باشه این لکه حلال رو اینجور محرابه کنی این به عنوانه حلاله مگر اینکه که نسخی بشه شریعت بیاد و این یک چیزه یک چیزی نه نه چیزی که مشکوکه حلاله نمیگونیم این آب یا شراب این حلاله این رو به اصطلاح در شباط در مورد جهر میگیم در شباط موضوعیه میگیم اما اون نه اون یک امر واقعی است آقایدان الان هر دو رو تعبیر به اصلاح طول یا اصلاح حل ما از کردیم که اگر اونی که ناظر به واقع اسمش قاعده بگیزنیم این قاعده طول حل. اونی که اصلاح به ناظر ظاهر رو اصل, اصل, حل. اصل حل و اساسه بین اصالت علم و قاعده علم فرق بذارییم و در مقام تعبیر هم از کنیم ادبیاتش ادبیات قانونیش اینجوری اگر قاعده باشه دنبال واقعیه اگر اصل باشه دنبال علم هر حکمی که مغیاب واقع شد اون قاعده است هر حکمی که مغیاب علم به خلاف شد اون اصله هم خود حکمشه برای اینکه امام ادبیات قانونیشه مثلا کل شیء مطلق حتی يرد به نهی وارد کل شیء مطلق حتی يرد به نهی این با قاضی که باشه چرا چون گو فواختی وارد بشه نه نه بیاد تا شار نهی بکنه این نهی رو با اما کل شیء لکه حلال حتی تعلمه حتی تعرفه ان هو حواموند بری این اساتید ال چبه هستا تعریف تا مغیی شد به این و به خلاف این بشه اصطلاح بدی نیست از کنم بودم تحکیل چند بارم گفتم آقا اون بعد یک که آز ندیدن کسی از بزرگان تا از سخول بندرکس طلبه ها متعرض این مطلعه اما مطلعه خوبیه این اصطلاح به نظر من یک اصطلاح خوبیه وقت مثلا ما درباب تهارت یه قائده تهارت نداره اما اساس تهارت تو ما قاعده نداری که هر چیزی رو خداوند به عنوان طاهر قرار بدی مگر اینکه نجس بشه خود به اونی که ما داریم کلش این دارید حتی تعلم عنه و حتی تعلم این میشه اصل طاهر. پس قاعده طاهر نداری. مخالف قواعد انسانیه اینطور میشه هر چیزی به عنوان پاکه. هر چیزی هر چیزی ما در شریعت نداریم اما بله هر چیزی که نمیدان پاک اینه دارید. پس بگیم قاعده ی نداریم اما اصالت رو داریم اما قاعده ی که که چیزی بیفی نفس اکار باشه اینو نداریم این دو تاشو سومی توی براحت توی براحت هم همین میشه گو یه قاعده ی یک اصالت رو از کنم قادم تکار کنم در این از این کلمات نه اونی اگر این تقسیم بندی روشن بشه این اصطلاحات بهتر ج من هم الله محمد امین از کلمات اهل سنت اون نفی واقع رو فهمیده و از کلمات اوسوگین ما قادر سنگیم که جای خود دارد اصال برایه در اسطلاح ایشان قاعده اصال برایه هست هم هست اونجا هم میشه تفسیر کرد مشکل نمتایی اونجا هم همین تصدیل بکنی بگی این در واقع نه که در واقع در واقع برایه مگر اینکه دلیل بیاد اگر علامت در واقع نیست اگر شک در از داریم به نحو شوریه کلیه واقعا شخص نیست اینو قاعده قراره واقعا شخص نیست عمل حق نمی‌کنه چرا؟ در عمل این علمیشه خیلی واضحه یکیش اینه که همین که معلومه الله مال و میگه چه خور اصاس رو برای جاری کردن با این همه بایین شما روایات داریم که للافی کل واقع اصلا حب این للافی کل واقع اصلا حب با چی منافعه با اینکه در واقع برایت باشه با اگه در واقع برایت باشه خب با للافی کل واقع اصلا حب میریسته باشتنیش میخواه آخه این شما دیشون ملاحبی میجه اونم منافعی شد نه دیگه اونم که از روایات مورد جهن هر موضوع من این تدبیر روشن بشه که ایشان از اساسون برای از در این تعبیر من این تعبیر رو نوشتم برای اینکه نقاط بحث کاملا نقاط بحث روشن بشه روشن شد شهر از پس اثرات البرائ که ملا محمد امین رستمی در کلمات و علمای ما فهمیده قاعده برات که اصلاح بنداله من در واقع نیست لازمه چون مخوانم عرض بکنیم بردها ایشون خب اشارش نید که احکام هست این روی مبانی احل سنت جور در میاد روی مبانی شیعه جور در که احکام هست چون مخوانم بعد این قاعده قبط اقاب بلا بگن برای همین مرگومتی درست کرد که با این مشکل حل بکنه پس یک برد قاعده برایت اینا باشنه که اصلا بگیر نیست و ارز کردن من بر نیست در نیز میارهای الان هم همین باشه سونیا هم هم کردن. یعنی اگر شما در ماده قانونی قانوندان ها و او دانه کارشون همینه می دیگه میگن کلان مطلب در قانون نه نه در قانون اساسی آمده نه در قانون خاص مدنی آمده نه قانون خاص آمده پس این واقعا درست جایز این کار درست چی شرطی نیست واقعا نگه نیست مثل ابن هرز میگه نیست واقعا چین چیزی وجود ندارد چرا موشونشون بگه ما فردنافر کتاب میشه یا با تو آیات باشی یا تو روی مخصوصا در اون جایی که صحابه میگوستن نیست یک میگوستن نیست دیگه نیست دیگه نیست. دوشن شد سراشی پس یک اشکال ملا محمد علیم در حیقت این بود که شما با این تصوره اصحایتو دارینه قاعده رو روحه شما با روایات ما شرار میکنید چون این اصحایتو در کلمات اهل سنت آمد تو کلمات و اصولی ما هم آمد مخصوصا از زمان ابن افریت ما تقریبا اولین کسی که خیلی دیگه اصحایتو برایش تمثبه میکنه در فقر ابن افریت واقعا به طبیلی تمثبه اصحابه و انسان احساس می کنه باید احساس در برایه مثلا یه حدیث هست، حتی حدیث شاد به همه احساس رو برایه هستن ما این حالت اینجوری پس یک بحث احساس رو برایه این درجه اول احساس رو برایه درجه دوم ما همید درجه می کنیم می درجه دوم بگیم آقا ما از واقع خبر نداریم خوب دقت کنیم مدعا رو درقت بکنیم دریگ رو مدعا در تقریبا تقریباً سیو اقلام یا آیات سودایی به چشم می‌آید. من می‌خواستم که این شدن بسیج پذیرش از منیت خود است. سیو چون باور اینگونه که این که نوشش که روشن نشده، داریم این بخش‌ها مطرح می‌کنند. یکی می‌روشم بیشتر از که نه ما در واقع رو نمیتونیم حکم می‌کنیم. شاید احکام باید شده صحابه نفهمیدن در اول می‌کنیم. اول آخره اون اما خودشاره شاره خودت خطر بکنه محفوظ کلام چیه محفوظ کلام اینه که ما بیانی روایتی آیه برای این عنوان پیدا این محفوظه کلام بگیم خودشاره در محفوظ کلام جعل کرده مطلب داره در خود شاره منظورده خب این خیلی راحته اینا مثل اولی راحته این رو الان اسمش روشن براءت شرعی اصطلاحا نلا برایت شرعین مفادش چیه؟ خوب دقت کنید شما وقتی مخایید استدلال بکنید بدونید مطلوب چیه؟ طبق همون مطلوب با جلو بریم مفاد برایت شرعین چه حکم باشه چه نباشه حالا که شما جاهلین در ظاهر حکم ندارید خوب دقت کنید اگر جاهلی اگر دقیق پیدا نکردید در ظاهر حکم نداری. این اسمش مخالف اصطلاح ما شده برایت شرعی طبیعتا این بعد از کجا ثابت بشه از روایات دی که این دیگه جزء برایت عقلی نیست یعنی وقتی مرموم الله محمد این یعنی نکات تندیر مخواد مطرد اصرا اشکال میکنه که در کلمات و اصول قبلی ما برایت آمده برایت جزء احکامه ها رو گرسن. نه این مطلب روی مبانی و اصول قبلی ما جور در میاد نه به اشکالات مولا محمد همین میرد خب شانه آمده تو حکم نیز دارن داره که. این که اینکه هم نمیشه که این چطور شده که هم صابقی مثل محقق و اینها نمیشن برابطه اصلی جزوه حکم عرض هم مولا محمد همین استعبادی حمله کرده که این حکم عرضی این که حب این تغییر اگه ما تقریمان این باشه این که حکم عرض نیست این تقریب اون این باشه که خود اشکاره آمده گفته آجان در حال جهت ما فوق نداردیم خود اشکاره گفته این که مشکل ندارد این نه عقلی نه یز عقل حساب میشه نه اشکال ما محمد عدین بهش وارده حالا این چرا بزرگان ما اینطور وارد نشده حالا خیلی از این که امسافر هم خوبیه مقدار اون حرفای که اهل سنت رو کتاب واشون خب دنیای می زمان همه دست اهل سنت شیه گوشه گوشه مثلا دستن گوشه لبنان گوشه ایران دست این زمانایی که ایشون اوائل صهویات یه گوشه موشه یه دایی گذا، مثلا بله اینطور مثلا دولتی، یا تشکیلات یا حوزه ها یا این حرفا که مثلا داشتن بود اما خیلی محدود بود بعد در بحث براءت شری ان شاء خواهم کرد ان شاء الله عمده رواياتی که ازش مفادش برایت شریف یعنی این معنا که خود شارع بیاد بگه من من حق گفتم حکم نداریم ظاهرا خوب کنید کنیم کنید این که حکم واقعی نیست ظاهری نیست, نیست این اصلا حالا فرض نیست یه ذره شما ما از عدلیه در نمیاریم بحث دیگه طرح رو اول گوش بدید روشن بشه اینا عمدهشون اومدن علی صراحه توضیح کرد حالا این حدیث رفت در کتاب های ما مثل شیخ مثلا که دیگه کتابه اصلی بود و خلاف و اینا رو شیخ در خلافش حدیث رفت رو به متن سلاسی نرمی کرده چون مطن سلاسی به این احل سنت معروفه که خطا و مستقه و ایناست ستا چیز بیشتر توش نیست این متن سلاسی هم محل کلام شدید بین اعلام احل سنته یعنی مثل فرض که مثلا بخاری قبول نداره مسلم قبول نداره اما ابن حجر که جزء عین قبول داریم حدیث ثلاثیش هم محل کلامه شیخ طوسی هم در خلافش این رو آورده در با و کتاب های دیگه اصلا کلا حدیث را به نیاورده یعنی بوله متن ثلاثی آورده این متن ثلاثی هم احسان خدا بین اهل سنت معروفه هده اده همه توش مالای نداره کار به اون چون متن سلاسی ام اخلاف داریم شما تو من تمام مطول رو عرض می کنم چون از متن سلاسی داریم که بوده متن ایجاعتون رو خیلی مفصله می در محل خودش از این متن سلاسی لاعقل توش مالای علمون نداره هرچی اخلاف کنم بعد گفتیم تو این متن سلاسی مالای نداره یک متن داریم که شیشت اون نهتایی رو کافی در ابوابی ایمان و کفر نرکرده تو فرو نیارده اصولت بیشترین روایه هستی که شیف تو تردی و استفسار روزه از کافیه و اون هم از کتاب به استلاف فروعیشانه حدیث رفت به هیچ محط نشت از اون محطی که پیلی نحل سنتی به هیچ محط نشیه حدیث رفت و شیف توسی نیارده این که چرا نزنیم چون باید ریشیاویو چطور شد مثل بزرگان ما حدیث رفت رو نیامده خب این که ظاهرش ز... این طور رو برامدیم ملای این یه شیخ کل صدوق آورده در فقیه لکن کتاب سر خیلی مرد جب ها نبوده و مرسل هم آورده قال رسول الله توی خسال خودش بله مصنع دورده که مرگومی شیخ انسالی هم با اون مرد با, با قرقه و شیخ و صدوق خسال صحیحا با عنوان صحیح اون حساب اونم صحیح می کنیش دو تا اشکال اولش هم آخوششون در محل خودش آن بیشتر اشکال رو به اول به آخر هم داره بودن اشکال داره فرمان نوشن خدمت پس در،, در کافی هم مرسله. مثلا کافی کلن مرسل بود دو بار روزه هرزاش هم مرسلی ارسال فاصله زیاد دو تا پسند یکی بیشتی بیشتی یکی هرز شده چون دقیقا نمیرون چند مقرد هرز شد برد سند خسام <تصفيق> یک این حدیث این تاریخش ای بود لذا خواهی نخواهی بعدش هم یک مشکل دیگر اون حدیث این بود که ظاهر رفت واقعیه در مثل نسیان هم بناشون بگید شد که رفت واقعیه یعنی واقعا شما حکم ندارد از اون برای اگر می آمده در حال جهر حکم ندارد یه تحصیل بازه پس حدیث رفت دو تا مشکل داشت غیر از مسئله و غیر از سنده از یک مشکل دیگر حدیث رفت دلالتش بود چون اگر می به دلالت احصان تحصیل بازه لذا از کلمات معروف ناینی و آقای که دیگه از معروف ناینی که رفت در حدیث واقعی واقعیش الا در مالای علمون ظاهری خب اینا تمام علمی میخواد اثبات بکنی سیاق واحد بحث از سیاق دقت میکنه ایشون میذانه چون حکم عقلی هست که تسبیب لازم میاد و محاله پس در مالای علمون ظاهری اما در بقیه واقعی رفع واقعی خب من اشاره کردن میخوام واژه بحث بشم روشنش این البته این مشکل هست یعنی انصافش یک مقداری کار اخباری ها از این جهت مهم بود خب اینا نیامدن اصولی ها برایت رو بگن ما لاغل از حدیث رفت هم بگیم حالی این اشکال بود بگیه خیلی مخورد بگیم اشکال مردم محمد امین استرابادی به نوشتارهای اصولی ما اصل اشکال که ما سعی کردیم از احل سنت بگیریم و طبیعتا در بعضی ها دقت نشد که با مبانی ما نمی سازه نه همه جا اما با اون سختی اینکه که مرموم الله محمده بین و از دین و, و فلان و تخریب و با اون دردی از گفت خب اگر مثلا مرموم شیخ سوسی می آمد این محاضره این قرار می زد. مثلا مرموم شیخ سوسی اصاط الهرد و ها کرده. باغه مطمئن مثلا اونا می گفتن اصلا هرد رهن و باغه یعنی چی؟ اصل اولی ممنوعیتی که الان اشاره میکنم اینا میونه از نام قاضی لازم تصرفی مال شخص الا باذن مودم ما که خداییم ما هر فعلی از افعال اون شک بکنیم میتونیم تصرف بکنیم فعلا انجام بودیم مگر اینکه دلیل بر جواز باشه که یعنی اختیار بین ما دارد؟ این استظهار در کلمات شیخ سوسی نیامند رهن امتی مالای علمون. در کلمات شیخ مرتضی مرحوم ابن ادریس نیامد بعد الله نیامد محقق نیامد رد ذهنیه لونه اسات برای اونها روشن شد مرزا معروف است که مرحوم شیخ انسالی سال فرموز که اگر ملا محمد امین استاد زنده بود از سال من دید این همه اشکال بگرد نه تبیه اساط البرای اساط ال احتیالش برمیده خب اگر کسی گفت مل... البته ملا محمد امین استاد اینها رو به موضوع خارجی میزنه. این مشکل کاری دویی قیل از ها رفت واقعی مذاهره چون در نسیان مراد خارجیه این ملایه هره خارجی شما این آب رو خیلی کردیم نجیسی یا نای خوردی برمانشون نجیس بود برمانشون خمه بود اشکال نادشون ملایه هره اشکال ملایه هره این بود که شما تو احکام بیان بحث بکنید. بکنیم تصدیل مظهر اما حالا پس نایمی که معتقده از علمان اینا معتقده در رفعنام اومدی مالای عدم اوش حامل رو این حملات شدید مرمومه استعبادی حامل درد البته این من روشن رو این نحوه تر قبل از استعبادی نبوده یعنی یا حدیث رو ندیدن یا اگر دیدن به این توجیه که من ارز کردم تشکال داشتن نیمی دونست مرمون ستو برز چیست سال مثلا اون ناییی میده همین مبنا رو فرگوی میکنه لیکن به این معنا خود شارع گفته خوب دقیق بکنید خود شارع گفته در ظاهر چیزی برای شما نیست خود شارع گفته تا نجه چند تا مبنا شد دو سال مبنا ببینید دقیق بکنید این یک در واقع نیست دو در ظاهر خود شارع گفته نیست سه، یه سری بحث های اصولی آمده روی عنوان تنجیز احتمال یک که سوم میشه و تنجز محتمل چهار البته برکه ازده سر کردن این دو سال یکی قرار بوده ما نشاره توزیاد ساله همه اشاره کردیم ما معتقدیم تنجیز احتمال اگر بررسی کردیم بیشتر میخونه به بحث اماره بودن اما تمنجزه محتمل بیشتر بخواه به بحث اصل بودن. چون طبق بحثه که ساخت کردیم اگر ما دنبال واقع باشیم و دنبال حد واقع باشیم این اماره است. دنبال حددل این باشیم این اصله. ما در اماره می رسیم به واقع در اصل ابداع نفسه. اصل عملی نفس ابداع می مثلا اون فلسفی قدیم اگر از راه مشترک باشه این مال اماره اگر از قبولی وهم باشه این اصل عملی غیر محرزه اگر تسابقات قبولی متخیله باشه اصل عملی محرزه اگر در, در اصطلاحاتشون واضح نمیشه تو نمیخواب این نحصه بشه. پس اصل یعنی ابداع نفس سبون و چهارم اینه اصل سبون یک ما چاره کار نکرده ما بگیم آیا احتمال منجز هست یا نه اصلا دنبال این بحث بگیم خب طبیعتا دو بحث میاد یکی این احتمال فی منجز نیست یکی بگه احتمال فی منجز هست اینا بگیم فی نفسی میگم برشان توضیح مراد از تنجیز احتمال مثلا شما یک دلیل ما پیدا کردیم که مثلا سیگار کشیدن حرامه چون ضرر داره این مثلا این دلیل شما 70درصده این تنجیز یعنی احتمال شما طریبیت داره اما طریقت بسیار ضعیفی داره آیا همین طریبیت ضعیف کافی برای تنجیز همین مقدار ما در تنجیب و حرمت میشوزه این دو درست تنجز محتمله تنجز محتمل به این نه. من خود بفرک بگیم آقا ما احتمال تنجیز نمیاره اما وقتی این صورت در ذهن ما آمد که 70 درصدی حرمت 70 درصدی در ذهن ما آمد نفس ما ابداع میکنه و او رو 100 درصدی قرار بشیده در نتیجه میگه از او جدا بشه پس یه به تنجیز یه بحث تاجه جز تنجز در هر دفعی نفسه خب دقیق دقیقی خب پیانسه برداشم خب حالا مبنا بر اینه حالا من در بحثات توضیح میدم نه در باب احتمال یعنی اینجور مبناست اگر احتمال باز باشه اونجا تنجیز نمیاره محتمال هم متنجز نمیشه اگر احتمال مسدود باشه هم به یک لحاظی تنجیز میاره هم به یک لحاظی تنجوزه محتمل این اصطلاح احتمال باز و احتمال محصود در کلمات اصولی نه به جاش آمده احتمال باز و شبهه بدیه مراد از احتمال باز شبهه بدیه یعنی شما وقتی شبهه دارید در 70 درصد که سیگار کشیدن حرامه این مورد میشه احتمال باز اما احتمال بسته مثل که میدونید یا سیگار کشیدن حرامه یا فرص مثلا مثلا پفرک خوردنن با مثال علم اجباری به عهده همه شبهه در اصلاف علم اجمالی ما می‌گیم احتمال بحثه یه اصطلاح برای خلال مالا دارمون خوش روی یا چیز کنسی باشید یه اصطلاح پس بیاییم بگیریم حالا این اصلافش در بحران برد و اضعای بحث اغلایی بشیم روشن شد که در معیارهای اغلاعی احتمال باز منجز نیست اون محتمال هم پیدا فیداد در احتمال بسته چرا. یا بگید احتمال در اطراف علم اجمالی منجزه احتمال در, در احتمال صرف در نصف شبهات بدیه منجز نیست وقتی این تصور ما فرض بین شبهه و غیر محصوره روشن میشه شبهه محصوره وقتی که کاملا احتمال بسته است اما اگر شبهه غیر محصور زیاد شد که این احتمال بسته در حکم احتمال باز شود دیگه اونجوری نیست شما خیلی راحت میشید یعنی اون بحث محصوره و غیر محصوره این بحث ما اصولی این که ضابطه روی محصوره غیر محصوره چیه با این تعبیر ما روشن شد یعنی اصطلاح ما حالا دقت این بحث چهارم شد در بحث برابر بحث پنجم میاد در بحث پنجم یا در تنجیز یا در تنجیز میاد میگه نه از خود احتمال خارج بشیم یک چیز خارجی بیا بیادیه کنه بکنه بگرد بکنیم از خود احتمال ما تنجیز در نمیاریم. اده ای از اصولی چه سنی میشه شیعه در درجه اول اگه بناسا از خود نفس احتمال خارج بشیم آمده رو حالت سابقه حساب کرد. اونو مقدم بیرد. مثلا میگن آقا شما قبل از اینکه بالغ بشین که حرام نبود بس موید که حرام نبود. حالا که بالق بگیردین شک میتونید استگاهیشن حرام شد. استثابه برای. بخلی کرد. اونا آمدن خارج از احتمال که شدن اول حالت سابقه. یا اول اصلا خلوه به زمه بود که شریعتی که نبود. احتا می نزایه مردان بحثا به این شد یک اصلا این استثافی نفسه جاری هست یا نه بحثا به خودش دو اصلا این استثاف واقعه نظر از خواهد استصاف. مثلا موضوع بگیم اول شده تو بالغ نبودی آلا بالغ بحثا خودش اصلا این استثاف دقیق کردیم پس راه پنجام ما این در حالات سابقه نگاه بکنیم به برکت اون این احتمال رو بررسی بکنیم راه شیشون اگر گفتیم به حالت سابقه کارساز نشد بیاییم به احکام دیگری این روشن بکنیم یکی از اون احکام همون اساطل هند ما منبول که مولا هستیم تصورتونیم چه که مگر به اجازه نتیجه این اساس برق... احتیاط یکیش گفتن حکم اقلی دخت ازاره محتمل اینجا که داره محتمله نتیجه این هم و جو یکی آمد گفت نه اصلا قانون قانون فقط قانون الهی قانون یک خاصلتی داره که توش حق و طاعت داره حق و طاعت که شما اطاعت بکنید خود احتمال کاری میچین بکنید خود محتمل کاری میچین بکنید اون نقطه خارجی حق و است طبق این هم میشه اصول اختیار مرموم الله محمد در این استاد اینکه روایات آمده گفته در تون گهر چند تا شد خارجی در تر پس بنابرای کنیم باشن شد چقدر شنگی ما بلاقات و براتون که شما اگه خواستیم فکر بکنید یکی, یکی موارد رو معیم بکنید. ازده آمدن گفتن نه اون نقطه خارجی مثلا ما از شارج میفهمیم محتملاتش مهم نیست، پس تنجز المحتمل لنید از این راه های متحد پس تو حالا روشن شد حکم واقعی حکم ظاهری تنجیز المحتمل پی نفسه تنجز المحتمل پی نفسه بر نه خارج بشیند احتمال حالت سابق استصحاب برای اون حالت سابق مشکل پیدا کرد از حالت الحضر یعنی عدم جواد تصرف حق و طاقه دفع ذرن محتمت همجه حتاب بکنی ابن هرز آن گفت نه روایات از اهل فید داری که شما احتیاط بکنی چرا؟ چون احکام واقعی داریم شما در اون افکان واقعیه برسیم پس چند تا اصالتون برای یا احتیاط اینجاست یکی از این خارجی میگید که از اون من. حالا اگر این هم نشد این مرحله هم نشد مرحله آخر آخر مرحله این نیست که وحیبی بهوانی مثلا کرده ما اگر اون کار را انجام دادیم شک میکنیم آیا کیفر داریم یا نه مفروض اینه که ما بیان نداشتیم یعنی مفروض اینه که این وجود تمام نباشه اون وجود براقصی هیچ خوب نزیدی این وجود احتیاط مثل حق و طائل مثل روایات اگر اینها تمام نشد اون اینجا اینطور میگیم ما نفهمیدیم اون احتمال منجل پرسنه اما این رو میدونیم کیفر نداریم چرا؟ چون کیفر حصولاً بر عنوان تمرد اسیان برپردم حکم واقعی باشه در حد احتمال بوده دیگه بیشتر که احتمال نبوده کیفر رو بر عنوان احتمال بار نمی کند چرا؟ چون با احتمال انسان متمرد نمیشه آسیه برقانون نمیشه پس روشن شد ترتیب پس این وجه قبهه قابلا بیان به حضر این ترتیب ترتیب طبیعی این در آخر امره البته نتیجهش این میشه که اون احتمال منادزی یا محتمال منادزی نتیجهش اونه و از این راه وارد شده از راه کیفه و این مطلب هم برای شما روشن شد مثلا بعضی از آن نمشن اینکه این, این قبعه اقابلا قبل از ذهیر کسی نگفته خب برای اینکه قبل از ذهیر اصلا به این مرحله نرسیده بوده سنیا میگوستن در واقع نید یک احتیال میمند ایش تو تبقیه این تصیر ما نحوه استدلاد درجات داره یا اونان گفتن استثاب برایت تکلی از کسی استصحاب گفت دیگه نوبتی به قبعه قابل بیان نمیدسه این تغییری که من چون شما تمام مباحثی در دراعاتیشا نگاه می‌کنید ببینید این تغییری در مورد این یک تغییر بسیار لطیف این یعنی مقدارش از در چی خبر ندارم شیخ یک مقدار مسائل و اصول و در امارات رو درجه بندی کرده این درجه بندی خیلی موثره ما توی اعتقادات قانونی به هم ناریدیم. پس یک واقع شد دو حکم الان آقایان ما مسائل آی از این ظاهری وارد شده اولیشون قفه اقافه لابنه قبول داره اما قاعده نوبت به اونه میرسه <تصفح> علمای ما خیلی اشتر اصحاب براعت میکردن اونام نوبت به قاعده قفه اقافه و اگر قاعده حق و طاعت هام شد اونم برای قفه اقافه شد که این مقدمه یا اصحابه اون مقدمه طبقی این تصوری که ما کردیم اون مقدمه پس باب براعت ترتیب اینجوریه هم عقلی نیست که. مرحوم آشان مولا محمد در این استرابطه اشکال بکنه یک در واقع برای دو در ظاهر یعنی خود شارعه بخته در موضوع احتمال من حکم رو برداشتم که این حدیث رفت حالا بخشان حدیث حجم هست که این شالا میاد سه دقیق کنید بحث روی تنجیز احتمال و تنجیز محتمال سه و چار. چهار. چهار ما پنج ما از تنجیز احتمال مثلا جزء جزو محتمل خارج بشیم به شوارد خارجی یکیش استحاب بوده که یکیش در حضر محتمل بوده که یکیش حق و طائع بوده که یکیش روایاتی بود که دلاره برای اینا خارج شد بود تنجیز دلاره پنج یالا پنج و شیش هست مرکت شد حساب شد آخر اگر اینا یکی کدوم کارساز نشد وحید میگه اقاقه برای این مطلب ق درگی احتمال اگر طول درگیش هر وقت عزیز من در شما اول فهمید در طول بعد میگی در شوشن. در طول که درگی باشه درگیر بیس خب من همین را یعنی اگر اونجا پنجیز احتمال نوبت به قابل قابلابر نمیرسه اگر پنجیز احتمال نوبت به قابل قابلابر نمیرسه ما اگر تو و احتمال صاف کردیم که احتمال منجز نیست. اتهام قبحه البته قبحه قابل علاوه نتیجش این است که احتمال منجز نیست. نتیجه شاید. از اونجا وارد شده. در و در از داریم. خب ما در طول منفی است اجاب روزو برد ما موسیقی ز تو برد از نوزه که میشترو ای بابا بحث من نه داریم تنین بکن من میخواهم بگم هر کسی میخواد که برای از وارد بشه بیتونه چه کارگرده میکنه روشن شد چون ما هر کنون اینه خوب دقت بکنیم در مباحث اصول به طور کلی زاویه ای باید کار کرد خیلی از امارات اینو ما کرارا هر کردیم در اصول بلکه شما اگر آمدین گفتین ظاهرا حکم نیست یک جور نتیجه گیری میکنید اگر گفتید عقاب نیست همان عدم تجریدیه احتمال از عدم عقاب نگاه این سر این که از اصولی مثل شما در کفایه در مسئله و اکثر میگه برائت عقدی جاری نمی شه و برائت شرعی جاری میشه این سر شینه در برائت شرعی فقط آمده گفت حکم ظاهر نیست او کار به احتمال نده. خود اما در برات که عملیات مسئله عقاب نگاه می‌کنم میگه احتمال منجز نیست چون عقاب از اون. یعنی وقتی می‌خواد بگه احتمال منجز نیست زاویه چشمش به چیه بعد از عقوبته اما اگه میگه نه اصلا من خودم عقوبت از این طور که نیست احتمال باز به تعبیر بنده شبهه برنی احتمال باز اینه که منجز من کار عقوبت ده. از اون عقبه مرحله متأخره اصلا احتمال در نیست خدا ان دیگه احتمالاً باز ما این توضیحاتش ان که احتمال پی نفسه دیگه پس بنابراین خوب دقت بکن آولینی که میخوان اصل براءة رو بعد از این بحث کن چون این بحث من در حی حالا فرضین است این زوایای بحث رو مثلا خوب مثلا میگه داد شماش میگید براءة مراد چیه کدوم وقت ازای دستش بودی حق و تارب یک نتیجه میده اختیار روایات هم یک نتیجه میگه. مالای علمان گفت کردیم تمام این زبایی برمن روز خیلی نقطه ی لکی و خدمت آنه که اگر روی این کار بشه این نه فقط در بحث بر حالا کجاهاش عقلیه برای از روز عقل گرسیم من روز همه داشت هم عقلی نیم فرضا در ده برد فرضا چون منصور شده شاید که ما مشتبه سامورده ما مظلوم افرادن دو روز دست اسمیشان بگیرن. آ اصلال معده سرا که ت دوشن به این 18 سالا یک قط می این به مقداری که بین ما فعلا با مهظ استرابانی مصالحی ای به شن خود بحی وعد در محل خودش را